بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله تیبین تاهرین المعصومین لاسی ما الله في العرزین. اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام و علی جميع انبیاء الله و رسوله و ملائکته اجمعین السلام علينا علینا و علی عباد الله الصالحين السلام علی علی امیر المؤمنین السلام علی الصدیق الشهید السلام على علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین السلام علی ی بن حسین زین العابدین السلام علی محمد ابن علي باغر علم النبیین السلام علی جعفر ابن محمد الصادق السلام علی موسی بن جعفر کازم السلام علی ی بن موسی الرزا السلام علی محمد ابن علی الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجت ابن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الاحد من نيل زیارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام انا ادعوكم الى كتاب الله وسنه نبيه فان السنه قد اميتت و البته تقد اهیت، فان تسمه و قولی و تطیع امری اهدکم سبیل رشاد. بحث در این بود که موانع تحقق هدف انبیا چه بوده است و واقعه کربلا و واقعیه آشورا، فرمایشات عبدالله الحسین و یارانشون. و همچنین عمل اون بزرگوار در معرفی این مانه و رفع این موانع چه درسی به ما آموخته است به عرض یکی از موانع مهم تحقق هدف انبیا عدم معرفت صحیح نسبت به وحی و کارایی وحی است و ما دیدیم در بین کسانی که وحی را قبول کردند نبوت را پذیرفتن انبیا را فرستادگان الهی دانستند هم در صدر اسلام بر مبنای برنامه های خاص سیاسی زمان و اهداف شوم منفعت جویانه و هوای نفس و خودخواهی ها به گونه‌ای مطرح کردند که در عصر ما هم به صور مختلف گاهی از گوشه و کنار چه به صورت گفتار چه به صورت نوشتار شاهد میشویم که توانایی وحی کارایی وحی حد اقلی است و شما توقع همه شعون انسانی را از وحی نداشته باشی دیدیم که اگر قرار شود از دید قرآن کریم و نگاه دروندینی کسی رستگار شود باید مؤمن باشد و مؤمن باید مطیع خدا و رسول گردد مطیع خدا و رسول باید موارد اطاعت را مشخص کند نسبت به اون موارد اطاعت اطاعت معنا پیدا بکند وقتی حکم الهی را امر و نحی نبوی را و آنچه با به عنوان شریعت و قوانین الهی که از طرف ذات اقدس الهی برای ما معین شده اون را در یک محدود خاصی قرار دادیم برای همه شعون زندگیمون مطیع خدا شدن پس معنا پیدا نمی کند نه عقل این را میپذیرد پذیرد نه شعره. لذا آیاتی را به اقتضای چند جلسه ای که وقت محدود بود با هم بحث کردیم به عنوان درون دروندینی گرچه اگر عزیزان دقت می در لابلای همون بحث دروندینی که به آیات و روایات پرداختیم نکته های ذریف عقلی بروندینی هم نهفته شده بود اگر دقت می‌فرمودید روشن می شد ولی علاوه بر آن مستقلن هم نگاه حکما، نگاه متکلمین، نگاه عرفا، نگاه جامعه شناسان، نگاه حقوقدانان در رابطه با وضع قوانین در نظام اجتماعی بشر را به عنوان بروندینی با هم دیدیم. فشرده بحث حفشوه گذشته چه شد؟ اگر بشر نیازمند باید و نباید است اگر انسان ها به حکم و دستور العمل نیاز دارند حاکمی که این حکم را معین کند شارعی که این شریعت را مشخص سازد به قول ملا صدرا در قاعده امکان اشرف آیا برتر بالاتر آنی که بر همه شعون احاطه دارد او سزاوار است؟ یا این که سراغ مواردی برویم که هم خودشون معترفند که احاطه به همه امور را نداریم و هم تجربه نشون داده که انقدر اشتباه کردن مرتب نظریاتشون رو تسحین نمودند که بشر وقتی به ثوابق تاریخی این گونه آرا و اندیشه ها توجه می کند اعتمادی نمی تواند به آنها پیدا کند بر همین مبنا قرآن کریم در نقطه مقابلش هم در سه آیه شریفه چهل و چهل و پنج و چهل و هفت ماعده میفرماید با سه تعبیر مختلف و معلم یحکم بما ما انزل الله هم و اوائکه هممول کافرون و معلم یحکم به ما انزل الله هم و اوائکه همموز زالمون و ملم یکم به الله هم الفاسقون آنانی که به غیر از اون چه که خدا حکم کرده است حک میکنند. به غیر ما انزل الله امر و نهی می اینها به تعبیر قرآن کریم کافرند و ظالمند و فاسق در رابطه با این کفر چنو کفریست است در وسایل الشیعه جلد 27 صفحه 35 از امام صادق علیه الصلاة و سلام نقل شده است من حکم فی درحمین به غیر ما انزل الله فقط کفر کسی که در مورد دو درهم غیر از اونچه که خدا گفته حکم رو دارد این کافر است قلت راوی میگه گفتم کفر به ما انزل الله او کفره به ما انزله علا نبیه آیا کفره به اونچه که خدا نازل کرده یا کفر نسبت به پیامبرش غاله امام صادق فرمودن ویلک اذا کفره به ما انزله علا نبیه فقط کفره به ما انزل الله اگر کسی به اونچه که پیغمبر بیان کرده کفر ببرزد این کفره به خدا ورزیده مگر پیامبر از خود چیزی میگوید او بر مبنای ما انزل الله حکم پیان کرده مجموعه این مطالب که گذشت به اینجا می رسیم. اگر ما با نگاه دروندینی به اسلام نگاه کنیم و با همین مقداری که نگاه بروندینی داشتیم به اسلام نگاه کنیم نمی شود حکم حکیم ناقص باشد یه نکته عقلی زریفیه فعل هر فائل به اندازه ارزش اون فاعل ارزش دارد اگر من انسان افعالی دارم گفتاری، نوشتاری، و نحی اقدامی و فعلیتی چون من ناقسم امکانی اینکه جاهل باشم هست و لذا فعل من فعل جاهلانه باشد این توجیه بردار است اما اگر یک فائلی نقص و جهل در او راه نداشته باشد فعل او فعل ناقص و فعل جاهلانه و فعل غیر کامل نمیتواند باشد و لذا در تعبیر حکمت حکما بحث بسیار جانانهای را مطرح کرده‌اند و سخن هم سخن بسیار درست و بجایی است تحت این عنوان که اگر ذات اقدس الهی را حکیم میدانید فعل حکیم باید از حکمت برخوردار باشد در غیر این صورت به حکمت حکیم لطمه وارد میشود پس معلوم است یا حکیم نیست که فعلش از حکمت برخوردار نیست یا اگر حکیم است اما می توانست فعل حکیمان انجام بدهد انجام نداده تعت تأثیر عواملی واقع شده است که باز به حکمت لطمه می و اگر از دید قرآن کریم حکم الهی قرار برای سعادت بشر باشد جنبه اجتماعی انسان از جنبه فردی خیلی حساستر و مهمتره و لذا آنانی که در مسائل تربیتی هم اظهار نظر کردهاند. میگن یکی از عوامل شکل بخشی شخصیت انسان ژن و اره از او مهمتر خانواده و نظام تربیتی خانوادگی است از او مهمتر نظام اجتماعی است. و لذا دیده شده است که از خانواده ولی به جهت یک شرایط خاص اجتماعی خانواده ها دچار مشکل شدن حکیم اگر قرار دستور العمل تربیتی و ارشادی برای انسان ها معین کند در یک شعن عظیم و مهم اجتماعی ساکت بنشیند این با حکمت سازگار است؟ مگر کسی حکمت را راجب مغنن اصلی که حضرت حقست در نظر نگیرد این بحث اقلی را قرآن کریم در خیلی از جاهای قرآن دو جاشو من سریع اشاره میکنم کنم و رد میشم یکی در سوره مبارکه یونس همون آیه سی و رو که قبلا بحث کردیم ارز کردم پایه بسیاری از بحث های بروندینی و دعوت عقل برای بررسی کردن است افمن یهدی الالحقه احقا من ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهداف لكم کیف تحکمون آیه بعدش یک نکته زریف عقلی حکمی حکیمانه که منهای بیان قرآن کریم میتونه کاملا یک بحث بروندینی باشه ولی دقت باید بشه بشه ببینید آیه شریفه چی میفرماید آیه شریفه در آخر آیه 35 فرمودن اونی که به حق هدایت میکند سزاوارتر است طبق بحث دیشب اشرف و اخص اخص با سین اشرف برتر، پایین پایینتر، آیا بالاتر یا پایینتر عقل چه حکم میکنه؟ و وقت در آیه 36 میفرماید: اونایی که هدایت الهی رو قبول نمیکنن و بحث هدایت رو میخوان به غیر خدا نسبت بدن، یه ویژگیشون که از اونها منفک شدنی نیست اینه و ما یطب او اکثرهم الا ظنن ان لا یغنی من الحق ان الله علیم بما یفعلون اکثریتي که در این گونه مسائل به خودشون حق اظهار نظر میدهند و مطالبی رو بیان میدارن اینا بر مبنای زن و گمان و حدس ما خیال میکنیم اینجوری بهتر میشه اون وقت ببینید شما اگر یک بیمار را به یک پزشکی بسپرید بگه به گمانم عمل جراحی کنید بهتره اون دیگری بگه به گمانم عمل جراحی نکنید بهتره سومی بگوید به گمانم داروی ایکس رو بدید بهتره چارمی بگه به گمانم داروی ایگریک رو بدید بهتره ما در این وسر متحیر میشیم مگر چاره ای نداشته باشیم اگر هیچ چاره ای نداشتیم بالاخره بین همین صاحبان و گمان و زن یه جمبندی میکنیم به یه جایی میرسیم اما در رابطه با وضع قوانین و نظام حقوقی انسان ها منهای خدا زن است. دیشبم اشاره کردم صاحب نظران معروفی در طول تاریخ برخی میگن با زور برید برخی میگن با قانون برین برخی میگن با توجه به یه قدرت ماورا ماده برین برخی حتی مثل راسل میگن تا ایمان به یک جایی متره نشه نتیجه بخش نبا... نباید بود همه اینها در حد حد و است به قول حافظ جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند خود این همه اختلاف آرا دلیل بر این است که یک تشخیص دقیق همه جانبه نسبت به اینکه که چه کنیم تا این سنها به رستگاری برسند وجود ندارد اگر در مورد زن و گمان طبی و عطبا در رابطه با یک مریض عرض کردم چاره نداشته باشیم یه جمبندی میکنیم اینجا بحث اینه خدا هست یا نیست خدا پیغمبر فرستاده یا نفرستاده خدا کتاب قرار داده یا قرار نداده در کنار این کتاب طبق فرهنگ ما شیعه امام معصوم قرار داده یا نداده و حتی برای دوران غیبت که اینها از امام بر مبنای اجتهاد نه در مقابل نصب با که ارز بکنم راه معین کرده یا نکرده خب اگر راه اغلائی وجود دارد به زن و گمان چسبیدن چه می‌شود اینکه قرآن کریم در قالب یک آیه کوتاه اینگونه سرزنش میکند. این و ما یطب و اکثرهم الا ظنوا ان ظننا لا يغني من الحق شيئا این گمان‌ها و ظن‌ها شما رو نسبت به حقیقت بی نیاز نمی کنه انالله علیمون به ما یفعلون خدا میدونه شما دارید چه کار میکنید. لذا خدا برای حل مشکل شما شما رو رها کرده این یک نکته در آیه سی و شش منهای توجه به آیه خودش یه بحث عقلی مفصل بروندینیه ولی باید توجه کنید این همین تو بحث آیه پنجا سوره مبارکه قصص غسص مشکل دیگر. ما گفتیم بشر من حتی از رسو براتون خوندم گفت هم عقل کل میخواد هم خیشتنداری راستین که گفتم این وقتی در فرهنگ دروندینی میاد میگه باید کسانی به با عنوان هادیان برای انسان ره بشن که از نظر علم کم بود نداشته باشند اگر عقل کل نیستند متصل به عقل کل باشند لذا برخورداری از عقل کل بشن اون خیشتنداری راستین گفتیم چی گفتیم از آلودگی ها هوای نفس تعلقات شخصی خودخواهی هایی که دقالت بکند حق را آلوده بسازد از اینها دور باشند که اوجش در فرهنگ دینی میشد چی میشد اسمت و لذا در اون آیه شریفه‌ای که در سوره انبیاء فرمود که وجعل الله هم ام ائمتان یحدون به امرنا بر مبنای لما صبروا و کانو به آیاتنا و قانون اینا همه بحث عقلی بروندیه منتها درون دینم مطرح شده که توضیح دادم حالا این آیه در این رابطه چی میگه آیه 36 یونس چی گفت گفت ظن گمانه با زن و گمان به جای اگر و شاید و باید و مگر و اینا آدم رو به جایی نمی رسونه باید انسان نسبت به اون عوامل اصلی تعالی انسانی با قاطعیت بتونه وارد بشه و این کار عقل کله و این کار یهدی علال حقه. نه اون کسی که خودش نیازمنده به هدایت اما مشکل دوم در آیه شریفه پنجا سوره قصص ببینید چه میفرماد فرماد فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْوُ لَكَ فَعَلَم اگر تو رو اجابت نکردن همینطور که ابی عبدالله الحسین علیه السلام در این نامه ای که به سران بصره نوشته و سرلوهه بحث بنده و شماست داریم بحث میکنیم اد او کم الا کتاب الله و سنت نبیه بیاد بیمینی کتاب خدا چی گفته بیاد بیمینی سنت پیغمبر چی گفته سنت مرد بدعت زنده شد و من اومدم به شماها بگم بیاید گوش کنید حرف منو چرا منو؟ چون من از طرف خدا معمورم سنت الهی و سنت نبوی رو به شما بشناسانم نه آنانی که به خودشون این حق رو داده و بر این مسنت تکیه زده اند حالا فعلم یستجیبولکه اگر ترا اجابت نکردن تابعه تو نشدن تو پرانتز وقت زیغه من دارم سریرت میشم بذارید کنار اون آیه دیگه این اول آیه رو آیه دیگه چی میفرماد ذات اقدس الهی در قرآن کریم میفرماید که یا ایهال لذین آمن استجیب وللاغ وللرسول ازا دعا کم لما یوحی کم بیاید اجابت کنید وقتی شما رو میخونن نسبت بدون چه که شما زنده کنن شما رو جامعه زنده، خانواده زنده، فرد زنده، با قرائن عقلی و نقلی که عرض کردم، اینا مطلق قید نداره، پس اجابت کنید اجابت مطلقه، ما آتاکم رسول فخذو رسولم مبذف نسبت به همه شعون زندگی چون ان حکمه الا لله که توضیحش گذشت، حالا اگه اجابت نکنن، اجابت بکنن چه می شود؟ لما ما يحييكم شما رو زنده میکنه اجابت نکنن چه میشه فالا استجیب لک فعلم ان ما يتبعون احواهم اونجا فرمود زنه اینجا فرمود هوای نفسه و من ازلم من تبع احواو به غیر من الله چه کسی بیچاره تر گمراه تر به زلالت افتاده تر از کسانی که هوای نفسشون رو گرفتن ولی هدایت الهی رو کنار گذاشتن و من از اللوم منت طبعه هواهو به غیر خودن من الله ان الله لا یهدل قوم الظالمین سعایه سوره ماعده که براتون خوندم اینو بذارید کنار این آیه یکی از اون سعایه این رو فرمود و من لم یحکم ب ما الله اون کسی که حکم به الله نکند و که هموز اینجا فرمود خداوند ظالمین را هدایت نمیکند. ظالم یک مصداق ظلم طبق حکم خدا عمل نکردن. اینجا فرمود تاببع حکم خدا نشید، تابع هوای نفس میشید. کسی که توبه هوای نفس میشه ظالمه، پس هدایت نمیشه. خب اگر از دید خدا هدایت نشده، اونی که خدا به وسیله انبیا میخواد که این مردم به او برسند، میرسن. مثلا خلاف اون جهتی است که خدا گفته. خب پس چه کنیم؟ حالا اینجا به بعد سری رد میشم. پس به این نتیجه می رسیم ما برای زنده شدن جامعه زنده داشتن، خانواده زنده داشتن، دل زنده داشتن، انسانی که طبق هدایت الهی با اونچه که خدا میخواد قراره برسه باید یک باورش این باشد که حکم حکم الهی است لذا وقتی خوارج می اومدن در مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام این آیه شریفه رو می خوندن لا حکمه الا لله خطبه چهل نهجل و است امیرالمؤمنین امیر نمی این حرف غلطه میفرمودن حرف درسته ولی اینا ازو از او بد فهمیدن درستی حرف چیه؟ بله لا حکم الا لله کلمت حق یراد و, و به باطل کلمه درسته ولی اراده باطل کردن خب این حق را که هدایت از طرف خداست چی معرفی کنه وحی نبوت امام این دو سه شبی که باقی مونده خیلی فشرده میخوام به این نکته توجه کنیم خب حالا وحی رو پیغمبر میاره رابطه ما با وحی چگونه باشد این بحث هایی که الان میکنیم معرفت درست نسبت به وحی معرفت غلط نسبت به وحی کارایی واقعی وحی رو شناختن کارایی واقعی وحی رو نشناختن عاملی که در درون من قرار با وحی رابطه برقرار کند کارایی وحی را بشناسد و مرا وادار کند که به آن حد کارایی ایمان آورده عامل شوم چیست عقل پس رابطه عقل و وحی انجام دوچار افراد و تفرید شدیم ای داد بیداد که این بشر وقتی بخواد شیطنت بکنه زیر بار حق نره چه میکنه اینجام افراد و تفرید داریم مثل مرحله اول همونطوری که راجبه کارائی وحی ما افراد و تفرید داشتیم اینجا در رابطه با رابطه عقل به عنوان یک سرمایه‌ای ای که در درون من است و قرار بیاد سراغ وحی اینجام افراد و تفرید داریم یه دسته آمدن در طول تاریخ گفتن که اصلا وحی هیچ رابطه ای با عقل ندارد شما عقل رو بذار کنار فقط به زواهر وحی نگاه کن مگه میشه فقط یکی دو نمونه میخونم این خودش یه بحث یه دهه محرمه که وقت اجازه نمیده گروهی از اشائره در یعنی خود اشاعره نه گروهی اشاعره در اهل سنت که گروهی از فرقه های کلامی اهل سنت هن. گفتن حسن و قبح عقلی نداریم هیچ عقل نمیفهمه آقا این کار خوبه ما می دونیم این کار بده ما چی می دونیم هیچ نمی فهمیم فقط باید ببینید که خدا چی گفته حالا جالب اینه که این حسن و قبح عقلی رو منکر میشن اما نوبت به وضع قوانین و فقه میرسه افراطی میشن میگن عقل حق جعل حکم دارد چی شد؟ شما اونجا که گفتید عقل هیچی نمیفهمه حسن و قبه شرعی نداریم مخصوصا در جایی که عقل قرار نظر بده گفتید چیزی نمیفهمه ولی اینجایی که جاییست که عقل میفهمه که لا حکمه الا حکم حکمه باید خدا بده ولی اینجا چطور میگید؟ من خودم جبران میکنم حالا این معلوم میشه چه نقشه ای پس پرده بوده متاسفانه در دنیای شیعه ام این نفوذ پیدا کرد اخباریون من دو تا عبارت میکنم دین والاتر از آن است که با عقل محدود بشری هم سخن شود ای وای یعنی چی؟ اینکه تفکر قرون وسطایی مسیحیت علم با دین جمع نمی شود وحی با عقل سازگاری ندارد خب اگه وحی با عقل سازگاری نداره سرمایه ای که خدا به من و شما داده وحی رو خوب بشناسم وحی رو تو زندگیم دخالت بدم خب عقل که کاری نمیتونه بکنه پس چجوری با وحی رابطه برقرار کنم یه برخورد خشک قشری جمودی احساسی خیلی زود تحت تحصیل هرچی بخواد قرار بگیره تا این حد اگر احیانا میان ظاهر یک آیه یا روایت با بدیهیات عقلی تعارضی پدید آمد باید ظاهر آیات و روایات را بر حکم عقل ترجیح داد میدونین چی میشه؟ میشه داعشیا شکل نیرویافته مسلحش میشه داعشیا یعنی چی؟ خوب دقت کنید اگر ظاهر یک آیه ظاهر یک امر بحیانی ظاهر یک روایت که مستند به محسوم از محسوم به ما رسیده با بدیهیات عقلی معارض بود مثل چی؟ مثلا ظاهر آیه الرحمانو علالعرشست توا ظاهرش چیه؟ خدا رو کرسی نشسته الله فوق هم دست خدا روی دستای دیگه قرد. این ظاهرشه تو بدیهیات عقلی خدا که مکان نداره این که مسلمه خدا که دست نداره خب پس اینجا برخورده درست عقل با وحی چیه میگه آقا تعویل داره ما تو ادبیات هر زبانی تعویل داریم الان اگر تو فارسی به ما بگن دست بالای دست بسیاره هر کسی میفهمه یعنی به قدرتت ناز آقا جون قدرت بالا دست قدرت شما هم وجود داره الرحمن علال ارشستوا باید معنای اقلیش رو بگیریم نه ظاهرش رو یعنی چی؟ یعنی خدا بر کل هستی مسلط است این تو بحث احکامم میاد تو جای دیگه تو بحث اجتهادم میاد تا حالا ها شارز میکنم ولی وقتی اینقدر قشری برخورد کنن نتیجه به کجا میرسه از تفسیر و المفسرون نویسندش ذهبی معروف برای هیچ کس تفسیر قرآن مطلقا جایز نیست اگرچه وی دانشمندی عدیب و دارای اطلاعاتی گسترده در ادله فقه، نه، اخبار و آثار باشد و فقط میتواند به روایات پیامبر و صحابه و تابعین استناد کند. خب اگر عقل حق نداره قرآن رو تفسیر کنه خب قرآنی که نمیتونه بفهمه، قرآنی که نمیتونه بفهمه، چجوری میخواد با اهداف مکتب وحی آشنا بشه با اهداف مکتب وحی نتونه آشنا بشه و چجوری میخواد اهداف پیاده کنه اینا نقشه بود نظاراً قران تو عالم تحقق بیابه به من میگی چرا داد میزنی؟ میدونم از کجا آب خورده این عرفا و الانم از کجا آب میخوره گناهی که زیرک بودن پس پرده و نمی گذاشتن. مردم با حقیقت دین آشنا بشن جامعه ایدعال الهی بر مبنای قرآن و اطرات تحقق بیابد ببینید چه نقشه هایی کشیدن حتی تو شیع نفوذ نفوس کردن بذارید از کتاب الحدائق و نازره فی احکام ال الطاهره مال مرحوم شیخ یوسف بهرانی از بزرگان علمای شیعه است الحدائق قناعره، فی احكام ال اثرات احكامی که از ناهیه اثرات تاهره میرسه. مرحوم سید نعمت الله جزایری معروف میگه در مسجد جامع شیراز اینجا نقل میکنه. میان یکی از علمای اصولی مرحوم شیخ جعفر بهرانی بعد میگم فرق علمای اصولی و علمای اخباری یعنی برخورد عقل با وحی از نظر این دو گروه چگونه است اینجا الان معلوم میشه در مسجد جامع شیراز میان یکی از علمای اصولی شیخ جعفر بهرانی و یکی از آلمان اخباری صاحب جوام الکلم درباره فهم قرآن گفتگو در گرفت سرانجام عالم اصولی گفت آیا برای فهم معانی قله و الله و احد هم به حدیث نیاز است؟ اخباری گفت آری ما معنی احدیت و واحدیت و تفاوت میان احد و واحد و مانند آنها را جز به وسیله حدیث نمی دانیم خب خود حدیث با چی بفهمیم؟ حدیثی که میخواد بیاد روایت رو برای ما توضیح بده حدیث بالای سر منه قبول داریم ولی اگه عقل بذاریم کنار لذای تعبیر یکی از بزرگان اصر ما در این رابطه به کار برده انصافاً تعبیر قشنگیه میگه بعضی ها خواستن در تاریخ اسلام عقل و کنار بذارن دیدن مثل اخباریون مثل اشاعره دیدن دوچار دور و تسلسل میشن خب اگر ما عقل بذاریم کنار وحی و ب حتی در روایت من و شما اصول کافی تو حفه و ابن سکید وقتی به امام رضا علیه السلام رسید عرض کرد امروز حجت بر ما چیه فرمود عقله شما با عقل میفهمید قرآن معجزه است با عقل میفهمید امام حقه با عقل میفهمید وحی حقه خب حالا اگه عقل و کنار گذاشتیم ما به چه وسیله اینجا مجبور شدن یک کمی کوتا بیان گفتن عقل و قبول داریم فقط ما رو به وحی برسونه بعدش دیگه نه میگن یعنی شما عقل فقط در حد مفتاح میدانید نه در حد سراج مصباح مفتا کارش چی کلید برای اینه که من در خونه رو باز کنم وارد خونه شدم دیگه کلید کاری نمیتونه بکنه ولی چراغ من داخل خونهم بفهمم چه خبره چراغ میخوام با عقل کلیدی است که ما رو وارد وحی میکنه و همین کلید باید نقش چراغ را در داخل خانه وحی برای من بازی کنه لذا یکی از منابع استنباط احکام شرعی عقل کتاب سنت اجماع عقل. ولی به شکل درستش ببینید ملا امین استرابادی در کتاب فوائد المدنیه سردسته اخباریون این تو دنیای شیع از چه میگه با توجه به روایات نهی از تفسیر یا تفسیر برعی یا تعریف رعی به عقل تفسیر عقلی قرآنی جایز نیست و تنها تفسیر نقلی خب ما از اون طرف یه تندروی پیدا کردیم اومدن گفتن که آقا عقل بیاد کمبود وحی را جبران کند دیدیم این حرف غلطه وحی کمبود نداره که بخواد عقل جبران کنه در اجتهادم اگر عقل حق دخالت دارد به صورت اجتهادی که وحی راهش رو براش فراهم میکنه این بحث معروف اصولی در علمای اصول فقه شیعه که مطرح شده و معروف روایت از چند معصوم علینا الغا الاصول و علیکم به تفری ما اصول کلی رو بر شما الغا می کنیم. شما فروعاتشو رو به کمک عقلتون از توش در بیارید حالا عرض می کنم چگونه نه سلیغی لذا اومدن تو اصول فق گفتن علت حکم حکمت حکم منات حکم اینا با هم دیگه فرق داره اگر من یه جا علت حکم تشخیص دادم حکمت و حکم و تشخیص ندادم حکمت و حکم تشخیص دادم علت و حکم و تشخیص ندادم علت و حکمت و تشخیص دادم منات و تشخیص ندادم من مجتهد نیستم نمیتونم فتوا بدم بلا ولو عقل داشته باشم باید همه اینا رو به دست بیارم تا بتونم بر اون مبنا اینا رو برای ما گفته شده لزام مرحوم آیه خویی به عنوان یک فقیه اصولی در کتاب البیان جلد یک صفحه 421 و 422 در انتقاد به این تفکر اخباریگری میفرمایند. هدف و منظور از این گونه روایات که از معصومین علیهم السلام سلام به ما رسیده و فرموده تفسیر قرآن را به معصومین ارجا بدید فهم ظاهر قرآن نیست بلکه منظور از آن به طور کلی این است که فهم حقیقت قرآن و پیبردن به عمق و تعویلات آن و آشنا بودن با ظاهر و باطن و ناسخ و منسوخ آن اختصاص به کسانی دارد که مورد خطاب و طرف سخن قرآن می باشند ما نسبت به این زواهر آیات موظفیم عقل و دخالت بدیم نسبت به هم بریم اونایی که خدا اونا رو به ما معرفی کرده به عنوان پیغمبر و امام چه توزید توضیحاتی برای ما دادن با توجه با اون توضیحات بگیریم خب این یه نمتون رویه عقل دخالت نده تفسیر نکنه همین الان بنده تو این تهران شب‌های جمعه بحث تفسیر قرآن دارم انقدر تلفن به بنده می شود و انقدر برخورد می با کسانی که آقا شما که اینقدر به اهل بیت عشق میبرزید چطور جرعت می‌کنید تفسیر کنید قرآن رو ببندید بذارید تا امام زمان ظهور کنن ایشون که تشریفها بردن بعد تفسیر میکنن ما میفهمیم چیه که من مجبور شدم این مطلب مرحوم آی خویی رو برای بعضی بخونم میگم آقا آقای خویی یه فقیه معروف اصولی این همه مشتهی تربیت کرده است تصریح داره میکنه نمیفهمید این نیست عقل در محدودی که حق داره دخالت کنه با معیار باید دخالت کنه. پس این همه قرآن میگه که افلایت فکرون، افلایت اقلون، افلایت یتدبرون و سرزنش میکنه. چرا فقط قرآن میخونید کنار میرید؟ چرا تحمق در قرآن نمیگه؟ پس این آبرای کیه؟ آقا قرآن ببوس بذار و تاخچه. ای ما این ما میتونیم هدف قرآن رو بشناسیم. این از یک طرف که بحث ما فصل داره اگه من بخوام بعضی نقل قولها بود نوشته ها و باورهایی که الان دارن تو نسل ما رواج میدن آقا تو پرانتز بگم یه دستهای دقیقی در داخل و خارج بکاره. به کاره به اناوین مختلف القای شبه کنه به هر طریقی که میشه ایام محرم میشه من چند سال قبل این تو دانشگاه برام پیش اومد دیشم